بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلين و ال و صحبه اجمعین اما بعد اما بحث نشانه های قیامت ان شاء الله امثال بمون عضو بدید که بی آخرین جلسه باشه تا سالاینده نشانه ها دوباره همین بحث ادامه بدیم امشب آخرین بحث هشتمین جلسه در بحث نشانه های قیامت رو با و باهم داشتیم که تا سالاینده شده تکمیل بده تیم بحث رو ادامه بدید سال پوزش میتیم. پس که دهقی تا اون ذادت بیشتر ن صحبتون ولی اکسیگن شلو آینده. یک قسمت از اون بحثی که هست از نشانه های قیامتی که رخ داده مونده. و بقیه اون چیزی که داره رخ میده رو مایم گفت سالینده. خطام بحث بود دو تا از نشانه‌هایی هست که قبلا وقدریما رخ داده دو تا نشانه ها هست در دو دور از زمان رخ داده اولیش؟ allahatشان که عبادینیس، عبادشونین که و ذکر دین. لا تکوم ساعت حتی یقاتل <سؤال> المسلمون تورک قیامت بر نمیشه تا اینکه شما بچنجید با ترک Allah این تورک کی هستند و منظور آیه ترک تورک کدامون هستند؟ آذاری هایی که در ممنوع کرده مون هستند یا منظور ترک دیگری هست؟ لا تکوم ساعت ساعت حتی یقاتل المسلمون تورک قوم قوم قومان وجوه هم کلمجان المط کسانی هستم که شهرشون صاف مثل چکش <تصفح> چهره صافی دا. ی الشعب لباسشون پشم, پشم می پوم ممنا پوه و می پوم پوسته خوستن این بر در در رو هاده چشاشون ریزه در روده بین هاشون خیلی پوچی که تقریبا حالا اگر تام تشبیهشون بکنیم مثل چینی ها یعنی اگر بقوم بقا بعد به نزدیکش بگیم هرچند که این بسی که ما در این حدیث داریم در تعارض زیاد اومده یعنی این چنین بس در بعضی از روایات اومده در روایت در نزد بخاری اومده تو قاصن خوزن و کرمان تو اینکه بجنگید با خوز یعنی خوزستانی ها اهواز که بادرکشن وده و کرمان من الاهاجم حمر الوجوه و ادامهش هم مثل همین چهره هاشون کلمز رنگ و چهره هاشون مثل چکش صافه چشهای ریزی دارن این وصلی که از این منطقه اومده حالا احادیث را کنار را هم دیگه بذاریم از این ابواه ما چندین مسئله دستمون میازیم نباکنید از باب توجیه و تذکر برای خودم و برای شما ها, ها احادیث رسول الله علیه سراط و السلام نگه را به هم دیگه بزنیم بگیم که آقا این بحث قومیتی درش هست بحث بقول قول معروف کوچیک فرمدن یه قومی هست خیر این بحثا درش نیست توازنی هست درو خواهداد اقوامی با این به جنگ ما خواهند اومد یک زمانی اومدن مسلمان نبودن که اومدن الان که بحث اسلام شد دیگه قضیه فرق میکنه بحث چنگیزخان مغول و بحث هولاکوخان مغول با هم دیگه فرق میکنه این بحثا بحثی بحث هست که روخ داده کسان اومدن به جنگ مسلمان ها اولین باری که این مسئله روخ داد وقت کرمان وقت خوزستان وقت جنگ نهروان جنگ با فرس در نهاوند رخ داد با ایرانی ها در قادسیه و در خوزستان جنگ های مشهوری رخ داد در زمان رامون و خطاب مسلمان ها و جنگ با فرس اینا رخ داد. از این اقوام شده که میان به جنگ شما و رخ داد روبری مسلمان های استادن مسلمان شدن بخاری مگر از کجاست مسلم مگر از کجاست مگر نه از خراسانه مگر نه از همین کرمانی که جزی از خراسان بوده قدی من از همین منطقه ها هست پس این قضیه رخ خواهد داد یه جنگ هایی شود؟ اولین جنگی که رخ داد از این قضایات بحث خوزستان و بحث کرمان یک سری جن ها هم که ما حجر هم در کمال امام نبوی دار احادیث میگن یک سری ها هم شد در زمان امام نبوی خودش میگه که احادیثی که باید در صحیحین سن احادیث همه در صحیحین بیش از ده سال روایت دارن از چند تیم تن صحابه همین روایت ها که امام نبوی همین امام ابی در بدای و همچنین همین امام ذهبی در, در تاریخ اسلام و این نتیبیه در پسواه زک می کنه که این منظور رسیده صلی اللہ علیه و سلام خوصا این حدیث لات دفون مصرحه تا المسلمون از ترک قوما مجوهم کلمجان منظور ترک مغلا این قومی از مغل از مغل از مغلستان که ترک هم در اصلاحیتشون ترکه که در زمان چنگیز خان روخ داد اون دا چقدر بان سلمان ها پشتن حتی رنگ دجل و فراد عوض شد روخ داد و علمان نقل کردن و این مسائل به وجود اومد و از نشانه ها بود که در تاریخ نقل شده این اشخاص با این وصلی که رسول الله اللہ علیه و وسلم فرمودن این اشخاص اومدن به جنگ ما مسلمان ها این خومی زیار شد ما هم متحمل گناهان آنها نیستیم لبا لفتر آنها رفتن و هیچ وقت این احادیث دلیل بر تحقیر اون اشخاصی که از اون قومیت هستن دیگه نیست باید متوجهش همین بس که ما در همین حدیث داریم در بحث یعجوج و, و, و ماجوج هم ان شاء الله صلا و و بعد از اون بحثش خواهد شد بحث یعجوج و که راحت اومد ان شاء الله خدا به هم بده و صحت و سلامتی که باشیم در خدمت شما بحث یعجوج و هم همین چنین وصفا درباره شون اومده چهره هاشون کلمجان المطرفه مثل رویششون ساقه مثل چپوش چهره هاشون دایره رنگ لباسشون هم بازم همین به معروف پوست هیونا بازم اینچنین وصفی در باره یکیزی معجید اومده و همچنین کسانی که از فراسان پا میشن به پشت درجال رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف کسانی که به پشت درجال که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید همراهش هفتاد هزارتن معهو سفرون الف من قیادزن فراسان که هفتاد هزارتن از حاب تیلسان تیلسان منظور خلی مرک عمامه های بزرگی هست آلا. که یه نوع عمامه خاصی از یهوده حالا هنوز روخ نداده که ما ببینیم شکل قیابه هاشو این اینچینین در کتاب های شروح حدیثی اومده افتاد هزار تهن بعد چهره هاشون هم بینی هاشون صافت چهر ریز چهره دایری مانند این چهره هاشونه احادیث پس متعدده با هم دیگه خاطی نکنیم هر جایی رسول الله صلی الله علیه و وسلم از مسئله یاد میکنن یعنی اینجا بحث تاتار یک مسئله است بحث یعجوج ماجوج مسئله دیگر هست و بحث دجال مسئله دیگر فکر نکنید با بقولت که حالا چون اینجا تاتارن یا مغولن پس دیگه یعجوج ماجوج هم همون تاتارن همون یعجوج ماجوجن هم. یا اقوام دجال هم همون بقول معروف ها هستن چه قوم چینی رو هم دیگه تاکید نکنی چون در بس یاجب مجور میادیم. در قرآنا من شدن بعد بحثش خواهی کرد هستند که پشو صد زنن بیرون نیومه و نمیتونن هروز هر سفر را میکنند نمیدونن. اون وقتی که بتونن از این سط تجاوز بکنه اون وقت هست که دیگه فساد روی زمین میشه. هنوز که نشده هنوز که بیرون نیدن. از اون صد عبور نکنن پس این قوم کجا هستند در دنیا که ما ها رو ندیدیم فدا میکنن بح یاجب و مجود نکنیم با این مسائلیت. هر کجا، هر مدرسه، هر قسمتی از اینها مباحث خاص خودش داره و جاهای خاص خودش، حدیث رو دیک قاطی نکنیم. تأثیری بکنیم از هم دیگر. اینجا هم در همین مباحث در بحث نشانهای قیامت کلمات داریم ذکر میکنیم مسئله خیلی مهمی هست. در همون حدیث دادجل. خداوند شما بعد بره بعدم قاضی می‌دهد. خب اینجا مسئله مهمی هست. در بحث ایمان به های قیامت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فهمیم دقت کنید دادجل خروج شخص میاد از مدینه بلند میشه میاد رو دروی یه میسته میگه اشهد انک الدجال میگه شهادت رو دوام میدم که تو دجالی همون طور که اللهی حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه همون دجالی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم دربارش به ما گفتن همون دجالی بعدا درگذشته میاد میگه دجال را میکوشه دوباره زنده میشه میگه بازم من ایمانم به تو شریک تا اینجا یک بحثی هست و اونم ازیاد ایمان مؤمن در مقابله به پیوست شدن یا انجام شدنه به بخور پیوستن این حوادث پس تا تارقشون و رسول صلی اللہ علیه و از خبر داده به سببش ایمان مؤمن شدیتر بشه این یکی مسئله و مسئله دیگر اهمیت حدیث این هم دجال بیار دجال میگه تو همون کسی هستی که از رسول الله استفادت برای ما گفته شده نبش شده از رسول الله علیه السلام اهمیت علم شرعی. حدیث. که سبب میشه انسان در دینش با بسیارت بشه دینش باز بشه خوشبین میشه نسبت به دین نسبت به ها بتونه نخونش از فدناها بیرون بکشه. فدناه دجاله یا مثلا فدناه هرچند مرد که بشه رسول صلی الله علیه و سلم توش زیاد توصیه به نماز دارن به تعاقد داره ها چی میاد؟ فتنه برای ما خودمون پیش میاد تو زندگیمون چه باید بکنی؟ با و صبری و توصیه قرآن و توصیه رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا هم در بحث زجای، عجود و معجود، همین حمول آمدگیش داشته باشیم. ما نمیدینیم، امروز بیا، سردا بیا. باید تسلطی داشته باشیم بر احادیث سکیان بخلی صلی اللہ علیه و بر این مسائلی که رو خواهد دارد. تا این که بتونیم محکم و سلال در مقابل این فتنه ها بیزیم و در انسانی سرسیم. و تویستی خود رسال الله علیه و سلام به سنتش، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ هذا نواجذ و عندما أصيب سفت و مختام بيش بيش اسمي انتو رسول الله عليه الصلاة والسلام و بيش اسمي بي. بنا حدث بنا حدثت خدموني ستسايحين مزبو خري المسلم ناح حدث فخدرت الله عليه الصلاة والسلام بكارنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمن يؤمن بي و به فإذا فعل ذلك عصر مني دماغهم اموالهم تآخرش من فرصاده شدم تو انكي مردم شهادتين بيگن مجيب بمن ايمان بياورن و بأمش من اووردم يؤمنوا بي و بما جئتوا به ايمان برسول الله الله عليه الصلاة والسلام بأمشي كي اوورده ان احادث احادث رسول الله عليه الصلاة والله عليه وسلم كما در ازاش باية ايمان داشته باشیم باية اعتقاد داشته داشت باشیم هر رسول <سؤال> الله علیه و تسلم از خودش نگفته اون چیزهایی از خودشن این چیزهایی که از غیبه یک مسئله اجتهادی نیست یک مسئله حسی و گماننی نیست یک مسئله فقهی نیست یک مسئله از غیبه که روح خداست شما باید بهش ایمان داشته باشید آخرین نشانه قیامت که داده رسول الله علیه و تسلم فرمودند لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء تضيء اعناق الابل في از نشانهای قیامت اینه که آتشی از مدینه بلند بشه که نور اون آتش شعله اون آتش در بسا در عوض دیده بشه. یک منطقه دیده بشه از راه های دور اون شعله دیده می شود. اینو امنه کسیر نقمی کنه و نوری و نحجر و دیگران که این خضیه در سال ششتت هجری فنجاشار حجری قمری داد در مدینه چند رو چار روز طول کشید. اول چهار روز قبل از اون صداهایی شنیدن بعد از اون صداها آتشی پا میشه از کوهی از آتش بشانه یا نه الله بس میگن که تقریبا یک سر اون گداخته ها میامد به طرف مدینه تا اینکه نزدیکی مدینه اصلاف شعله به شده بود و آتشش میومد مردم اومدن توی حرم توی مسجد نببی شروع بدعا کردن, کردن که خداوند این بلا را از این مصیبت را برداره منکرین سنت، منکرین حدیث نبوی که میخواه این قضیه رو انکار بکنن بعد از 1400 سال آیا راهی دارن به انکار این قضیه ما مدینه دیدیم با چشم خودمون اون چیزی که رسول صلی اللہ علیه و سلم نف می کنه حالا تاریخ و تاریخ شناسان از ذهبی گرفته از افن کثیر گرفته از این حجار زرفتی و دیگران از عیمه تاریخ نفت کردن در خنار روز و تاریخ به اتفاق نفت شده یک کهیه و آن چیزی که در کوه های مدینه در منطقه حر دیده می شود مسئله دیگر ما می تونیم بریم ببینیم همون کوهی که آتش ازش افرخ شده بلند شده و همون گداخته هایی که اومده طرف مدینه قشنگ اون زنین سیاه رنگ واضح و مشخصه که نمی جغرافیایی این واقع رخ داده اهل تاریخ هم نه کردن قبل از این روخ دادها و تاریخ ها و حد سوگون تاریخی هزار و سال قبل رسول الله خاللالله علیه, علیه و سلم به امتش گفته بود، این چیزی روخ خواهد داد و روخ هم داد قول رسول الله صلی الله علیه و سلم کلامش هم حق، به حق هم پیوسته ما هم با چشمان خودمون بینیم و دیده از این چیزهایی که هست. واقر الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله محمد